بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلح كتاب صلح ويجوز الصلح مع الإقرار دون الإنكار على الأموال أو ما أفباء إليها بفرمايد وجائزة صلح حصف کردن الدرگيري بين الدو طرف قطع نزاع همراه بإقرار نإنكار یعنی زمانی که مدعی چیزی رو ادعا کرد و مدعا علیه اقرار کرد بعدا و صلح کردند این صلح صلح جائزیه دونه لینکار نینکار یعنی اگر مدعی چیزی رو ادعا کرد و مدعا علیه اونو انکار کرد مدعا علیه اونو چه کار کرد؟ بعدا اومدند بر اون چیزی که داره این کارش میکردند خب به خاطر در رفع درگیری صلح کردن این صلح میگه جایز؟ نیست. ولی جمهور میگن جایزه یا. میگن جایز؟ نیست. پس جایز از صلح با اقرار یعنی زمانی که اون طرف اقرار بکنه اونی که مدعا علیه اینجا خب با هم صلح میکنه. اما اگر انکار کرد که صلح اینجا جایز بر اموال یعنی درگیری بر اموال بشه صلح بر اموال او معاف افضل ها یا بر منفعتشون اجاره شخص ادعای اجاره کردن یه ای خونه ای رو میکنه یک رو میکنه منفعتی رو خب و هو نوعان و صلح بر دلائه ابراعون سلح و معاوضه صلح ابراه و صلح معاوضه صلح ابراه ینی که خود جلوتر می‌گه این بریم جلوتر فالابرا و اقتصار من حقه از بعضه ابراه اقتصار کاردنر بر حق از حقش بر بعضی یعنی بیاد از قسمتی از حقش تکار بکنه بگذاری هزار تومان با شخص درگیری داره بیاد 500 تومن رو چی کار بکنه بگذره بیاندازه کمتر یا بیشتر رو بیاندازه اینو میگن ابراه و المعاوزت و عدولوه و انحقه الى غیره سلح معاوزه اینه که از حقش به چیزی دیگه عدول بکنه درگیریشون رو خونه ایست اما عدول بکنه به یک ماشین مداله یه ماشینی بهش بده دارگیریشون رو خونه ولی مدعا علیه ماشینی بهش بده با هم چیکار کنند صلح بکنند اینو بهش میگن معاوضه این در واقع چیز دیگه بهش داد خب فیجري الا الابراء حكمه فی جواز التفرد المبرئ به من غیر ان یراع یا من غیر ان یرا فیه قبول جاری میشه بر ابرا بر انداختن قسمتی از حق حکمش جاری میشه حکمش در چه چی چیزی در جایز بودنی تفرده مبره ابراکننده اگر تنها بود ابراکننده بدون اینکه قبولی از جانب طرف باشه این جایزه این چیه بس جایز است که مابره تنها بشه بدون اینکه اون طرف قبول بکنه چون اینجا در واقع به نفش کرده چیزی رو انداخته ایجاب و قبول شرط هست در قرارداد ها ولی دیگه اینجا استثناء هست ایجاب و قبول بس طرف قبول هم نکنه این مهم نیست جایزه. ولا لا يثبتو فیه خیار رد و خیار رد هم در عبراه ثابت طرف اومده ابراه کرده خب خیار ردی نیست خیار ردی که بعدا اینو قبول نکنه چون قبولش اصلا درش همه شرط؟ نعم و يجري على المعاوزة حكم الباق الذي لا يصح إلا بين متبايعين اون مال إبراعوت اما در معاوزة ميجي جاري مشي حكم باقي كي صحيح نيست مگر بين دو متبايع إن ميس معامله ميس جي ولا يلزمو الا بالافتراق انتراز و الزامی نمیشه این صلح معاوزه مگر زمانی از روی رضاعت از هم دیگه جدا شدند این خیار مجلس داره از هم که جدا شدند از روی رضاعت دیگه خلاص این حق معاوزه تی صلح معاوزه <تصفيق> الزامی میشه ولا يجوز ان یصالحهو على مجهول او حرام و جائز نیست که صلح بکنه با او بر چیزی مجهول یا بر چیزی حرام شوکانی گفته در پاورقی یسیحل ابراه او آن المجهولی صحیح هست ابراه از چیز مجهول بعدش یه روایتی رو آورده که اونجا اون درگیریشون مشخص نبود دقیق که چه اندازه هست چیزی که روشتی بودند درگیر بودند میراسی بود که هنوز سهمها مشخص خب پس امام شافعی یا مذهب شافعی میگه جائز نیست که مصالحه بکنه باش بر چیزه مجهول یا حرام ولا به مجهول او حرام و همچنین جائز نیست که صلح بکنه بر بدلی مجهول بر بدل مجهول خب موقعی که صلح میکنه یه چیزی رو مشخص میکنن در معاوزه دیگه اینجا میگه اگر بدل مجهول بود صلح جایز یا حرام بود ولا على حد قذف لیاعفو عنه و همچنین جایز نیست صلح بر حد تهمت تهمتی زدن تهمتی زده طرف بیاد تکار بکنه عفو بکنه ولا على شفت لیات تروکه این جایز نیست صلح بر شه تا بیاد اون شه رو چکار بکنه. طرف ترکش بکنه والا الجناحن لیخرج هوفی تاری که نافظن مشترک و هم همچنین این جایز نیست که صلح بکنه بر جاحی که، شخص اونو بیاد در راه نافذ یا در راه مشترک خارج بکنه جناح چیه؟ جناح قدیمها یه چوبایی رو تو دیوار میکاشتن تو کوچه تو راه مسیر اینو بهش میگفتن جناح یک سمت چوب کاشته بود در دیوار یه چیزی دیگه بود بهش سابات میگفتند این جناح البته روشن هم میگن در عربی یه چیز دیگه بهش میگفتن صاحبات اون صاحبات کلن کوچه رو از این سمت تا اون سمت سرشو رو وصف میکرد سایهش میکرد اون چکارش میکرد تا هنوز تو بعضی مناطق حتی ایران خودمون وجود داره میگه جایز نیست که صلح بر جناح باشه تا بیاد شخص میگه آقا به صلح کنیم من بتونم جناحو میگه در بعض کتابا که من خوندم علت نموزاریش به جناح اینه که می مثل بال میمونه. چون چوبایی هست تو کوچه میزنن داخل دیوار. میگه جایز نیست که سلح و جناح باشه تا خارجش بکنه در طریق نافذ. یعنی طریق عمومی او مشترک یا طریق مشترک کوچه بومبسی مال چند نفره؟ مال چند نفره. خب این حق مال شخصی نیست که بیاد بر این چیز با هم دیگه چکار کنند کنند اگر طریق معافظه اون موقع اگر این جناح ضرر نداره یعنی موقع اهل کوچه اهل راه از اونجا رد میشن اذیتشون نمیکنه که موریدی نداره نیازی به صلح کردن با اون طرف رو این چیز خودش جلوتر میگه ویقر رو مالای در رو فی نافذی میگه اون جناح ثابت میمونه مالای در رو فی نافذ مادامی که ضرر نداشته باشه در راه عمومی یعنی موقعی که راه گذاران از اونجا رد میشن چه بدون بار چه بابار اونا رو اذیت نمی گاه موقعی یکی حملی روش داره و سواری چیزی اونو اذیت یا خود ره گذارن موقعی که من دیگه توی نباشه که باید سر و پایین بگذارن که این چوبه اونا رو چکار میکنند شون نخور. مثلا حتی چوبای خونه طرف خونه گلی داشت مم. این چوبه خونه مثلا تو کوچه دراز بودن اینا مثل جناح دیگه اینا مثل چی هست؟ جناح همینا هستند اصلا میگه و یقرر مالای ضروف نافذی دون المشترک و گذاشته میشه ترک میشه جناح جناحی که زرار نداشته بشه در راه عمومی دون المشترک نه راه مشترک چون راه مشترک آخر مال افراد خاص الا انتراز در مشترک نیازی به چه هست؟ بر بین بقیه اهل کوچه هست افرادی که این راه بینشون مشترکه بینشون چیه؟ مشترک. بله پس خلاصه در آخر میگه و جایز نیست که صلح بکنه بر جناح تا اونو خارج در راه نافذی یا مشترک بکنه اگر صلح کنیم این جناح ها رو اینجا بگذار این جایز نیست پس جناح دوگه معنیش واضح شد برات؟